بسم الله الرحمن الرحيم درس بعدي برقاطم الحضرو وأما الحضرو والإباحة هست إلو بحرف عب فست حضرو إباحة مع تو بر سخنيك امام جوینی در ابتدای ورقات آورده بود و اما اقسام کلامی. کلامی اونجا اجمالا گفت الان یکی از اقسامش و اما الحضر و هست منظور از حضر و چه هست خب حظر در لغت بمعنی مانعه عباحه بر خلافش بمعنی بودن ضد حظر هست یژه مسئله بسیار مهمی رو مطرح کرده است که در نزد اصولیون مورد مناقشه قرار گرفته است و اما الحظر والاباحه اما حظر واباحه از چه زاویه از این زاویه که اصلا اصل در اشیاء آیا مباح بودن است یا ممنوع بودن فلان چیز آیا شرعاً ممنوع هست، حرام هست یا مباح هست؟ اگر ما بگیم اصل بر مباح بودن است خب نتایج چیز دیگه است اما اگر بگیم اصل در اشیاء حرام بودن است نتایج چیز دیگه میشه و اما الحضر والعباح اما محذور بودن و مباح بودن فمن الناس من یقول آی اینی که اصل در اشیاء ممنوع بودن است و یا مباح بودن اینجا یک نظریه اصولیونو رو مطرح میکنه فمن الناس من قول بعضی از مردم منظورش از مردم اینجا خب اصولی ها هستن وگرنه مردم عادی که نظری ندارن فمن الناس من یقول بعضی از اصولی ها میگوین ان اصل الاشیاء علی الا ما اباحته الشریعه اصل در اشیاء بر ممنوع بودن است بر حرام بودن است مگر آن چرا که شریعت بیاد و اون رو مباح کند فا لم يوجد في الشریعت ما يدلو على الاباحتي یتمسک بالاصل اگر یافت نشد در شریعت آنچه که دلالت بر مباح بودن بکند به اصل چنگ زده می شود و چی بود در نازه این گروه و هو الحضر مباح بودن حرام بودن گروهی که میگوند اصل بر اشیاء حرام بودن است یعنی اگر از این گروه علما حکم شیعی پرسیده شود که این چیز مباح است یا ممنوع این گروه از علما میگردند اگر دلیلی وجود داشت که گفت این چیز حلال است میگوند مباح است اگر نه میگند حرام هست چرا؟ چون میگوند اصل بر اشیاء بر ممنوع بودن است ومن الناس من يقول بعض اصوليون میگویند و بعض از علما میگویند به ضد يعني این چیز یعنی میگویند اصل بر اشیاء در اشیاء بر مباح بودن است مگر اینکه دلیلی بیاید و بگوید این حرام است وهو ان الاصل في الاشياء الا الاباحه الا ما حظره الشرع بزده نظریه قبلی میگویند و ضد نظریه قبلی این هست که اصل در اشیاء بر مباه بودن است مگر آنچرا که محظور کند ممنوع کند شریعت این شد نظر دوم هم من قال بالتوقف و گروه سوم گروهی هستند که نظرشون بر توقف هست یعنی آنچرا که شریعت گفته است مباه است میگویند مباح است وآنچرا که شریعت گفته است حرام است حرام است و آنچه را که شریعت در رابطه با آن نظریه نداده است توقف می اما کدوم نظر با توجه ادله شرع قویتر و راجح در می تواند باشد؟ نظریه دوم یعنی اونی که می اصل اصل در اشیا بر مباح بودن است مگر اینکه دلیلی بیاید و بگوید این چیز حرام است در اون صورت اون چیز حرام است اما اگر دلیلی ناومده بود حرمت چیزی رو ثابت نکرده بود اصل در اشیاء اشیاء نافع بر مباح بودن است زیرا الله تعالی میفرماید هو الذي خلق لكم ما في الارض جمیعا الله ذاتی است که خلق کرد برای شما همه آن چرا که در زمین هست اگر خلق کرده است معنای خلق کردن برای شما این است که به حق تصرف داشته باشد و ادله دیگه که برای این مختصر ما همین توضیح کافی است و اما در ادامه حال میآورد و معنا استصحاب الحال استصحاب حالو میاره استصحاب به عنوان دلیلی از ادله شرع اصولیون میارن مطرح میکنن و بعدش روش نقاش میکنند که آیا اصلا این دلیل هست نیست اگر هست آیا مستقل هست یا نه یا در خدمت ادله قبلی هست استصحاب چه؟ هست؟ استصحاب در لغت مصدر باب استفعال هست به معنای طلب هست استصحاب یعنی طلب همراهی کردن مانند استغفار یعنی طلب بخشش کردن استسقاء طلب باران کردن طلب آب کردن اما در اصطلاح به چه هست؟ استصحاب در اصطلاح حکم کردن به این چیز که آنچه را که در زمان گذشته ثابت شده است اصل بر این هست که در زمان آینده هم بر هم طبق روال گذشتهش باقی بماند یا به عبارتی دیگر باقی ماندن هر آنچه که بر هر حالتی که بوده است تا زمانی که دلیلی بیاید و بگوید که تغییر کرده است پس حکم بر چیزی به حالتی که قبلا بر اون حالت بوده است تا زمانی که دلیلی بیاید و دلیل بر تغییر اون حالت بکند یا عبارت به عبارتی دیگر قرار دادن حکمی که در گذشته ثابت بوده است قرار دادن حکمی که در گذشته ثابت بوده است به همان حالت تا زمان حال تا زمانی که دلیلی بیاید و دلالت بر تغییر آن بکند که خودش انواعی دارد ایوز ان یستصحب الاصل اند عدم دلیل الشرعی استصحاب اصل شود هنگام نبود دلیل شرعی یعنی همون حکم اصلی و قبلی رو داشته باشد زمانی که دلیل شرعی وجود نداشته باشد بر این اساس اگر شخصی اومد بر شخص دیگهی طلب دینی کرد ادعایش پذیرفته نمی شود چون اصل بر این است که کسی بر کسی دین ندارد اصل بر این است که اشخاص براعت زمه اند مشغول نیست ما که كدليلي بیئات و خلاف آن رو بس بکنه پس با کتاب خلاصه است ما به استصحاب نمي ولی ولي یک سری قوائدي رو ذکر میکنن که قائده این استصحاب گرفته شده‌اند بر اساس استصحاب بنا شده‌اند یک اصل بر این هست که هر چیزی بر همان حالتی که داشته است باقی بماند تا اینکه دلیلی بیاید با آن را تغییر دهد. قاعده دیگر اصل در اشیا بر مباه بودن است و قاعده دیگر آنچه را که با یقین ثابت شده است با شک از بین نمی رود. این قواعد رو زهیلی آورده است، زیدان آورده است، خلاف آورده است و دیگر اصولیون دیگر اصل بر انسان این است که بری هست اصولیون میگویند تجوزا میتوان استسهاب رو جزو فیزاتی جزو عدله دانست وگر نه حقیقتا دلیل نیست بلکه دلیل همون چیزی است که حکم قبلی رو ثابت کرده است و استصحاب این چیز رو به ما میگوید که دلیل قبلی بر همون حکمش دلالت داشته باشد مگر اینکه دلیل دیگه بیاد و تغییرش دهد پس تج تجوزا استصحاب رو دلیل شمرده اما حقیقتان است که استصحاب خود میگویند دلیل نیست در هر حال از اخت... جز ادله اختلافی هست که علما روش نظریاتی دارند و بسیاری از مسائلو البته روشن خواهد کرد و آخرین مدار فتوه است. تا همین جای کار به این مسئله استصحاب اکتفا میکنیم موفق و پیروز باشید